به چرک مینشیند، خنده به نوار زخم بندی یا بندی ببندی رهایش کن رهایش کن اگر چند قیلوله دیوا شفته می شود. چمن استین چمن است با لکه‌های آتش خون گل بگو چمن استین تیماج سبز میر غضب نیست حتی اگر دیریست تا بهار بر این مسلخ بر نگذشته باشد. تا خنده مجروحت به چرکندر ننشیدد. رهایش کن چون ما رهایش کن.